زمانائم فصل اول تفتیش عقاید اسقفی کلیسا از اسقفهایش خواست که اطمینان حاصل کنند که بدعتگزاری در حوزههای نظارتی آنها ریشهکن شده است ویلیام هاریس رول در کتابش با نام تاریخ تفتیش عقاید اعلامیه پاپ لوکیوس سوم را نقل می‌کند که در سال 1183 شرح می‌دهد که دستگاه پاپی از تفتیش عقاید اسقفی چه منظوری داشته است ما با مشورت ها و به نیابت امپراتور و های دربار او می‌گوییم که هر اسخفی باید سالی یکی دو بار شخصا یا از طریق معاونش یا دیگر اشخاص با کفایت از آن بخشهایی از حوزه نظارتیش که معمولا گزارش می رسد که بدعت گزاران در آنجا فعالند دیدن کند و سه یا چهار مرد نیک سرشت و یا حتی اگر لازم میشمارد همه ی مردم همسایه را رسما سوگند دهد و موظفشان سازد که اگر می محل اقامت کسانی را که راه و رسمی خلاف ایمان و عقیده عمومی در پیش گرفتهاند کشف کنند و چون این کسانی را به اسخف اعظم یا معاون او معرفی نمایند. اسخف یا معاون سپس متهمان را به پیشگاه خود فرا خواهند خواست و اگر آنها از خود رفع اتهام نکنند و از رسم و سنت کشور پیروی ننمایند یا اگر دوباره به وضع اول بازگردند با داوری اصخف ها مجازات خواهند شد اما اگر از ادای سوگند امتناع ورزند بیدرنگ درباره آنها به عنوان بدعتگزار داوری خواهد شد تفتیش عقاید پاپی تفتیش عقاید پاپی که راهبان اجرای آن را بر عهده داشتند جانشین تفتیش عقاید اسقفی شد و در یافتن بدعتگزاران بسیار مؤثرتر بود در این نقل و قول از کتاب گستاف هنینگسن به نام تفتیش عقاید در دوره اولیه اروپای مدرن تصوری از نقش دومینیک به دست می آوریم. پس از بازگشت از سفری به روم در سال 1217 تصمیم گرفت برادرانش را در سرتاسر سرزمینهای مسیحی پراکنده سازد. تا دو اصل عهد جدید یعنی زندگی جمعی و مععزگری سیار و درویشانه را عملی سازند. اصولی که در مبارزه بیوقفه با بدعتگذاران لانگدوک هدایتگر شایسته ترکیبی پرشور از اندیشه و عمل بود او تلاش می‌کرد در میان جماعت مؤمنان عقاید صحیح و اصول اخلاقی را به پیروی از امید و شفقت مسیحی حفظ کند او در جنوب فرانسه برای برقراری آموزش عقاید کاتولیکی و دفاع از آیین سنتی در برابر کسانی که ممکن بود آن را به خطر اندازند تلاش می‌کرد و می تمام فضائل و رسوم مسیحی را به مؤمنان الغا نماید. تاریخدان گستاف هنینگسن در کتابش تفتیش عقاید در دوره اولیه اروپای مدرن اشاره خاصی دارد به تغییری که در دیدگاه کلیسا نسبت به بدعتگزاران صورت گرفت. تحولی روانشناختی به وجود آمد که در آن کلیسا به تدریج از تمایل اولیهش به مباحثه با بدعتگزاران به منظور اقناع آنها به بازگشت به وحدت عقیده فاصله گرفت و با اصرار هرچه بیشتر به این رأی نزدیک شد که به جستجوی بدعتگزاران بپردازد تا های آنها را توقع بندی و به مردم اعلام کند و آنها را به ابراز ندامت مجبور سازد و در غیر این صورت آنها را به مقامات دولتی تحویل دهد.